سلام از می‌کنم، خدمت شما ونگان عزیز، من شریفی هستم، به پادکست هوگمان خوش آمدید. در این قسمت در مورد ابرارت خسارت تأخیر تدییه صحبت خواهیم کرد. وقتی این ابرارت به کار می ره، مواجه ببینیم که با چه موضوعی روبرو شدیم. فرض می کنیم آقای الیف با آقای بی مبلغ 600 میلیون تومان در ابتدا ایتیر ما قرض می دهد و آقای بی متحد می شود که این پول را در آخر مرداد ما، با آقای الیف پس پدهد. خوب آخر مرداد ماه میشه ود، اما آقای بی از پسدادن 230 میلیون تومانی که از آقای الیف قرض کرده، از خود داری میکنه. در اینجا آقای الیف مجبور میشه ود که یک دواوی هویی تر بکنه. یعنی آقای الیف میشه ود خان، آقای بی میشه ود خانده و در سطح نخسته، آقای الیف محکومیت. آقای ب رو به پرداخت آن سی ست میلیون تومانی که به قرض دادست میخواهد و همچنین از دادگاه میخواهد که خسارت تخییر تعدیه را نیز از آقای ب دریافت کنه خب در اینجا آقای B به ما مراجعه می‌کند و می‌گوید که من فقط 300 میلیون تومان به آقای Alf بده کار هستم. این خسارت تأخیر تهدیدی دیگر چیز است. وقتی اینبارد به کار می‌رود، یعنی شما باید متوجه باشید که اگر دین خودتان را که در مثال ما همان 300 میلیون تومان هست در مورد مقرر که در مثال ما آخر مرداد ما هست، ادعا نکنید، یعنی آن را به تلخ کار خودتان که در مثال ما علف هست باز پرداخت نکنید مجبور می شوید به ازای تخیری که کردید خسارت به علف پرداخت بکنید یعنی این که اگر فرض میکنیم ما که در واقع آقای علف روز سوم شهری ورد دادخواست خودش را سبت کند یعنی سه روز بعد از این که آقای ب از پرداخت پوری که غرز کرده خودداری کرده یعنی آخر مرداد ما خراب بوده پول رو برگردونه این کار نمیکنه واقعیالف دیروز سبما شهردار دادخواست خودش را سپت میکنه یعنی دواهای خودش را آغاز میکنند به ترفیحه بی گفتم این یک دواهای هوشیز یعنی کاری با کلانتری دادسراب و دادخواه کیفی فری نداریم خب اگر این دادخواست در سبما شهردار سپب شود واقعیالف فزاغه بی خیسارت تأخیر تدیه هم خواسته. این دعوا رسیدگیش فرزند پزمانی که بخواهد نهایی بشه و دو سال طول بکشه. خب بعد از این که این دو سال این دعوا در جریان باشد و حقوق قطعی سادر بشه و ما برسیم به مرحله اجرای حقوق، دیگر آقای بیمه باید بداند. که آن سی ست میلیون تومان رو نخواهد داد یعنی خسارت تاخیر تعدیه هم با آن عدد اضافه خواهد شد و مثلا به جای آن که سی ست میلیون تومان بدهد ممکن است هشت ست میلیون تومان بدهد این خسارت تاخیر تعدیه همان مبلغ شاخص تورمیست که بانک مرکزی اعلام میکنند آیا زریبان در دادنامه هم میاید؟ یعنی رعی که به موجبان به محکوم شده است پول رو به علفه دهد؟ خیلی، در رعی فقط نوشته می شود که آقای به محکوم از به پرداخت سی ست میلیون تومان در حقق علیف به انزمام خسارت تاخیر تعدیه. این مبلغ کجا حساب می شود؟ این مبلغ بر اساس جدولی که بانک مرکزی در اختیار اجرای احکام دادکستری قرار می دهد در اجرای احکام یعنی جایی که حکم اجرا می شود مورد حساب و کتاب قرار می گیرد که در اونجا عدد نهایی مشخص می شود. بهتران از که اگر تحویل مالی نسبت به دیگران داریم، حتماً آن را در موعد خودش انجام بدیم که دچار این مشکل هم نشovیم و مجبور نشovیم که بعد از زودرخوک مقعده شدن آن به جای آن پولی که قرض کرده بودیم، بیایم یک مبلغی به مراتب بیشتر از آن را پرداخت بکنیم. پس این میشود خسارت تأخیر تدیه، یعنی آن وچه اضافه تر از 300 میلیون می شود خسارت وصفش می شود تخییر تدیه چرا چون می گویند شما اگر آن سی سد میلیون تومان را در انقضای مرداد ماه پرداخت می کردید عرضش آن سی سد میلیون محفوظ بود اما چون با تخییر ان را دارید، پرداخت می‌کنید. یک واتی اضافه تر از 300 میلیون تومان باید پرداخت کنید. که نمایان خسارت تأخیر تدیز، یعنی به واسطه تأخیری که در پرداخت داشتید تدی، یعنی پرداخت به واسطه تأخیری که در پرداخت داشتید، باید آمپول را هم به علاوهی از 300 میلیون تومان به آقای الیف پرداخت بکنید. پس اگر ما با ابارة خسارت تأخیر تدی مواجه شدیم چه به ما گفتند بمبان مشورت وقتی بمبان تلاب کار قصد داریم قامه دعو کنیم دیگر می دانیم که چه معنا می دهد وگرایالاکه ما قامه دعو شده و این باج در دادخواست بکار رفته پایه بدنیم که همان عددی را که بر فرض مثال در مثال ما قرض گرفتیم که 300 میلیون تومان بود آن را دیگر همین عدد پرداخت نمی کنیم بلکه با یک مبلغ اضافه در هست که به آن خسارت تأخیر می در واقع قانونگذار میخواهد به دهکار بده‌حساب را تنبیه بکند که اگر از کسی قرض میگیرد یا به هر ترتیب باید پولی به کسی بدهد آن را با تأخیر پرداخت کند و احده خود را بشکند و به تاریخی که تأخیر کرده از پای بن نباشد باید مبلغی اضافه تر بدهد و به این شکل تنبیه شود از توسط قانونگذار